ابو حاشم جعفری گفت که انهون زهره برجل من احل سرمن را برسونی یکی از احل سرمن را دوچار برس شد بیماری برس که میشه رسید فتنقذ علیه ایشو حالاتی بود در صورتش غیره مشکل شد براش فجلس یومن الى ابی علی الفهری پیش ایک از بزرگان سرمن را یه روزی نشسته بود علیه حاله. شکایت حالش کرد سألتُهُ اون بزرگ بهش گفت لو تعرض ته یوم حسن، علی ابن محمد ابن الرضا علیه السلام فسألتُهُ عن یاد اُولاک درجو تا ان یزول عنک اگه روزی بتونید به محجر مبارکه حضرت عادی برسی و بخواهید که او دستی به درگاه خدا بلند کند من امیدوارم که تو حالت عافیت تو دست باشه فجلس له یوما فی الطريق هر روز نشه که در مسیر حضرت رو ببیند وقت منصرف هی مندار المتوکل یه وقتی که حضرت رو برده بودند به مناتبین این حالا هم هر روز نه به تعبیر ما هفته یک دو روز متوکل حضرت رو می‌برد به داران ما خودش بر برگشتم فلا ما تاملی یافت نمودن بلند شد از جاش که بره حضرت نزدیک حضرت یساله که از ازت سال بکند طلب بکند این حال از خودش را خواهش کند که دعا کنند برای او همونطور که دورتر بود حضرت فرمودند تنحه واجهت نیست نزدیک بیایی تنحه آفاقلا اشار الیه به یده با دستتون بهش اشاره کردن آفاقلا شنید به فرمودند آفاقلا آفاقلا خدا تو را عافیت خدا تو را عافیت فعب را راجو برای شد رفت دیگه اصلا نزدیک حضرت هم نشد همونجا مستقیم رفت ولن یچ سر انیدنو و من و انسه دیگه به خود جسارت نکرد که نزدیک بشه رفت فلق الفهری رفت پیش اون آقایی که راه نمایش کرده بود فعرف حال گفت ماجرای این شد و ما قال به حضرت اینو گفت به من اما من جرو نرفتم نزدیکش نشدم فقال مرد سابی قد دا آلک. قبل ان قبل از اینکه که داد کرد اون بزرگ بار فمزه برو فن تو رو آفا به زودی آفیت رو میبینی الرجل فباد تلکن لیله شب رو خابید فلم ما اسبه لم یر علا بدن هیشه من منزاله کوچکترین عصبی از بیماری در وجود خودش فردا روز نیافت فمود آفا کننا افا کن لأ,